با درود خدمت شما عزیزان همیشه همراه با یکی دیگر از گسته های, های جادوگری در خدمت شما عزیزان همراه هستم و امیدوارم که تا به پایان این داستان هم همراه و همسفر من باشید این داستان سه پسر سلطان به نام خدا سلطانی سه پسر داشت، روزی به پسرهاش گفت، برید و برای خودتون کاری پیدا کنید. سه برادر به راه افتادند و به یک سراهی رسیدند. بر سر هر یکی از این سراه چیزی نوشته بود. به این راه بروی نیمه راه یابی؟ به این راه بروی آیا بیابی و آیا نیابی؟ به این راه بروی اصلا نیابی؟ برادر کوچیک‌تر به راه اول رفت و برادر وسطی به راه دوم و برادر بزرگتر به راه سوم. پس از مدتی برادر کوچیک‌تر و وسطی به قصر پدرشون برگشتند اما از برادر بزرگ خبری نشد. برادر وسطی گفت میرم تا پیداش کنم. سوار اسب شد و پشت به شهر و رو به های دیگه تاخت. به دشتی رسید و زیر سایی سبز درختی رفت از غذا پای درخت هم چشمهی بود با خودش گفت همینجا قدری استراحت میکنم تا ببینم چی پیش میاد در خواب و بیداری بود که اسب برادرش رو دید که مشغول چراست پا شد و بر خودش رو خوب نگاه کرد نعش برادرش رو دید با خودش گفت کی در من کشته؟ تا رفت نعشه برادرش رو از زمین برداره نقابداری ظاهر شد و او رو هم کشته. مدتی گذشت. سلطان دید خبری از دو پسرش نشده. برادر کوچیکتر رو روونه کرد به دنبال برادرای خودش. برادر کوچیکتر هم منزل به منزل تی کرد. به همون جا رسید و نعشه دو برادرش رو پیدا کرد تا خم شد به اونها دست بزنه نقابدار ظاهر شد. برادر تر از نقابدار پرسید که تو برادر‌های من کشتی؟ نقابدار گفت الان تو رو هم میکشم این رو گفت و به برادر کوچک حمله کرد. اما برادر کوچک اون رو به زمین زد و تا خواست خنجر بکشه و به پهلوش فرو کنه، نقابدار قبیژ زد و فقط نقابش در دست اون باقی بود. با خودش گفت یعنی چی؟ این کی بود؟ باید برم دنبالش رو پیداش کنم. سوار بر اسب شد و راهی رو پیش گرفت رفت و رفت تا به صحرایی رسید چوپانی گلهش رو میچروند نزد چوپان رفت و گفت تشنم، گرسنه‌ام چیزی به من بده چوپان هم ظرف شیری به اون داد و بعد ماجرای خودش و دو برادرش رو برای چوپان تعریف کرد چوپان گفت تو نمیتونی نقابدار رو پیدا کنی اون دختری که از جنس آدمیزاد نیست برادر کوچیک پرسید جاش کجاست چوپان گفت پشت این کوها قصری داره با دو اسب یکی به اسم کلهکن و یکی هم به اسم اقاب همین اسبا تو رو میکشن برادر کوچیک زیر بار حرف چوپان نرفت وقتی چوپان تصمیم اون رو دید و مصمم به رفتن هست گفت پس حالا بیا با با هم پیمان برادری ببندیم و با هم برادر بشیم برادر تر پذیرفت و چوپان به برادرش گفت پایین تر از اینجا کلبهای هست برو به مادرم بگو بگو که ما با هم پیمان برادری بسیم و اون هر چه که به تو گفت به اون عمل کن برادر کوچکتر خودش رو به کلبه رسوند به مادر چوپان همه چیز رو گفت پیرزن گفت وقتی به قصر این دختر رسیدی دو دسته علف همراه داشته باش در اتاق اولی دو اسبش کلکن و اقاب رو بسته. اصبا تو رو ببینن زنجیرش رو میکشند و دختر رو خبردار بکنن. اما تو خودت رو پنهان کن. تا سه بار خودت رو به اصبا نشون بده و پنهان کن. بعد یک دسته علف رو پیش کلکن و یک دسته رو پیش اقاب بینداز. و از این اتاق به اتاق دومی برو. دختره نقابدار اونجاست. صبر کن تا نقابدار بخوابه و بعد موهاش رو بپیش به و دور دستت و اگر به نان گندم قسم خورد ولش نکن اما اگر به نان جو قسم خورد ولش کن و به جای کشتن اون با اون عروسی کن برادر کوچیکی را افتاد از کوههای بلند گذشت و, و به قصر دختر نقابدار رسید دو دسته علف درست کرد و با خودش برد همونطور که مادر چوپان گفته بود عمل کرد به اتاق اولی رفت و خودش رو به اسپان نشون داد. اسبا زنجیرشون رو کشیدن دختر به اتاق اومد و اما کسی رو ندید. رفت بار دوم خودشون نشون داد و اسبا باز زنجیرشون رو کشیدند و دختر دوباره اومد. باز هم کسی رو ندید. بار سوم هم همینطور. دختر دیگه می شد و سیدی محکمی به گوش کلکن و آب زد و رفت. برادر کچیک هم یک دسته علف رو پیش کل یک دست علف هم پیش اقاب انداخت از اتاق اولی به اتاق دوم رفت سب کرد تا دختر خوابید در خواب موهای دختر را که بلند و زیبا بود به دور دستش پیچید وقتی دختر به نان جو قسم خورد که کاری به اون نداره موهاشو رها کرد دختر گفت چیزی که بوده گذشته به جای کشتن من بیا با هم زندگی کنیم اما شرطی هم داره مبادا به عنوان مهمان آدمیزادی رو با خودت به قصر بیاری با هم عروسی کردند اما هر روز برادر کوچیکتر به مادر چوپان سر میزد و براش گوشت شکار میبرد و حالا بشنوید از شازده این دیار روزی شازده این سرزمین سر نهر آبی رفت تا اسبش رو آب بده هر کاری کرد اسبش آب نخورد خوب به آب نگاه کرد چیزی توی اون ندید جز یک تار موی بلند و زیبا. مو رو از آب بیرون آورد و یک دل صد دل آشق صاحب مو شد. خبرش رو به پدرش تسوند. پدرش با خودش کرد صاحب مو چه کسی میتونه باشه که پسرم اینطور آشقش شده. شازده از غم اشک روز به روز لاغرتر و مریستر میشد و اون مو همون موی دختر نقابدار بود. بالاخره روزی سلطان ماجرار رو به پیرزن مکاری گفت. پیرزن سوار بر چرخ فلک شد و چرخید و چرخید تا به هوا رفت. مثل پرنده ای آسمون رو پیمود پیرزن از اون بالا همه چیز رو نگاه میکرد. از کوها گذشت و پشت کوهی قصری دید. چرخ و فلک رو پایین آورد و پنهون کرد. اون روز برادر کوچیکتر شکاری نزده بود و دست خالی به سوی قصر رفت و کنار در نشست. اتفاقا کشمش به پیرزن افتاد و از اون پرسید اینجا چرا نشستی؟ پیرزن با ناله جواب داد قریبم و راه گم کردم. اگه امکان داره یک امشب به من پناه بده. برادر کوچکتر دلش به حال اون سوخت و پیرزن رو به قصر آورد. پیرزن، که دختر رو دید پی برد که بله این همون دختر شاهد موه نقابدار شوهرش گفت مگه نگفته بودم آدمی زادی رو به اینجا نیار نقابدار خواست با خنجر پیرزن رو بکشه اما برادر کوچکتر نگذاشت پیرزن اون شب و شب بعد رو هم و روز بعد که نقابدار سرش رو میشست کلاه گرانقیمت اون رو برداشت و سواره بر سرخ فلک شد و خودش رو به قصر سلطان رسوند. کلاه دختر صاحب مور رو نشون داد و نشانی قصر رو هم داد. حالا از نقابدار بشنوید. نقابدار به شوهرش گفت کاری که نباید بشه شد. الانه که لشکر سلطان مثل مور و مرغ به اینجا می‌ریزند. اگه حرف منو گوش نکنی هم تو رو میکشن و هم منو میبرند پس خوب گوش کن. تو کل کن رو سوارشو من هم اقاب رو سوار میشم. وقتی لشکر حمله کرد، من اول به قلب دشمن میزنم و تو سر جاد باش. وقتی من برگشتم، تو به تازو به قلب دشمن بزن. اگه قرار باشه این دو اسب با هم حرکت کنن، در جا میستن و تکون نمیخورن. هنوز حرفش تموم نشده بود که گرد و غبار سواران لشکر سلطان قصر رو تیرو اتار کرد. نقابدار روی اقاب پرید و به قلب دشمن حمله کرد و چپ راست میکشت و مثل برگ درخت سواران رو از اسب به زیر مینداخت در این حال شوهرش تاقت برد. او هم با کلکن تاخت و منتظر نشد که زنش برگرده همین که کلکن به قلب دشمن رسید ایستاد و اقاب هم از جاش تکون نخورد لشکریان سلطان برادر کوچکتر رو با ضربه شمشیر از پا انداختند و از اسب به زیر افتاد او هم به میون نعش ها افتاد زنش رو هم اسیر کردند و بردند اما حالا بشنوید از مادر چوپان. چوپان بعد از دو روز قروب به کلبش اومد متوجه شد که برادر خوندش به کلبه مادری سری نزده اما در پرسید یعنی چطور شده که برادرم دو روزه که سری به ما نزده مادرش جواب داد نکنه این گرد و خاک جنگ دیروز مال اونا بوده. پس پاشو به میدون جنگ برو و লাশ ها رو نگاه کن. چوپان را افتاد و خودش رو به میدون جنگ رسون লাশ های سواران رو یکی یکی دید تا اینکه چشمش به نعش برادر افتاد. هنوز بدن برادرش گرم بود. اون رو از زمین برداشت و به کلبه مادر آورد. مادر چوپان بنا کرد به مداوا. انواع مرهم های گیاهی و حیبونی رو روی زخماش گذاشت تا اینکه خوب شد. بعد از مدتی بردر کوچیک گفت باید برم و زنم رو نجات بدم. پیرزن گفت می‌خوای بری برو ولی اول این مشک رو آب کن و برامن بیار. اون مشک رو تا نیمه آب کرد و اوورد. مادر چونم پرسید چرا اون رو تا نیمه پر کردی؟ بردر کوچکتر گفت زورم نرسید مشک آب رو پر کنم و بردارم. مادر گفت پس تو حالت خوب نشده و قدرتت رو به دست نیوردی چند روز دیگه گذشت مادر دوباره مشک رو به اون داد و این بار اون مشک رو پر آب کرد و با یک انگوش دارد مادر گفت حالا دیگه کاملا خوب شدی و میتونی بری برادر کوچکتر را افتاد و پس از طی منزلها ها به قسل سلطان رو پیدا کرد و حالا باز هم بشنوید از نقابدار. شازده نقابدار رو که دید حالش خوب شد و غذا خورد و سر حال و سرزنده و پیشنهاد عروسی داد. نقابدار هی hey, امروز و فردا می‌کرد و عروسی رو عقب مینداخت تا بلکه شوهرش پیدا شه و اون رو نجات بده. این بود تا اینکه روزی شنید مهتری کلهکن و اقاب رو رام کرده و با خودش گفت حتما که خودشه شوهر منه پس تصمیم گرفت به اتفاق مادر و خواهر شاهزاده سری به استبل بزنند حدسه نقابدار درست بود شوهرش مهتر استبل سلطان شده بود نقابدار با مادر و خواهر شاهزاده به استبل اومد چشمش که به محتر افتاد اون رو شناخت ولی حرفی نزد و برگشت روز بعد که سلطان برای دیدن اسبها رفته بود محتر به سلطان گفت اگر میخواید از کلهکن و در عروسی شاهزاده استفاده کنید باید حتما اونها رو تا روز عروسی به گردش ببرم سلطان رضایت داد بردر کوچیکترم هر روز کلهکن و رو به گردش میبرد روزی از کنار دیوار باغ شاهزاده اسب میتاخ که نقابدار رو از جایی که کمر دیوار شکسته بود دید افسار اسبش رو کشید و به زنش گفت فردا همینجا حاضر باش تا فرار کنیم. هردا صبح برادر کوچکتر و اقاب رو به بهونه گردش به کنار دیوار شکسته باغ آورد و از غذا این بار خواهر شاهزاده همراه نقابدار بود. در این حال نقابدار به خواهر شاه گفت نگاه کن اسب های ما کلکن و عقاب اینجا هست. بیا سوار شیم. برادر کوچکتر به اونا گفت نترسید اقاب رام رامه دو ترکه سوار شید. همین که سوار اقاب شدن دو اسب مثل باد از جا کندند و به قصر خودشون رسیدن. نقابدار به شوهرش گفت باز لشگر به اینجا میریزه و این بار مثل دفعه قبل اشتباه نکنی، این دو اسب در موقع حمله نباید در کنار همدیگه قرار بگیرن. من که از حمله برگشتم تو برو حمله کن و بعد من میرم. همینطوری همه شون رو از دم تیغ میگذرونیم. چیزی نگذشته بود که گرد و غبار سپاهی در هوا پیچید حمله شروع شد اول نقابدار حمله کرد و برگشت بعد شوهرش با اقاب به میدون رفت تا اینکه با یاری کلهکن اقاب سپاه سلطان را از پای درآوردند و تارمارشون کردند سلتان و شازده هم کشته شدند و بعد بردر کوچیکتر دنبال برادر خونده خودش چوپان رفت و اون رو با خودش به قصر رو برد و دختر سلطان رو که همراه زنش آورده بود به او داد و براشون جشن مفصلی گرفت و همگیشون به خوبی و خوشی مشغول به زندگی شدند. بله عزیزان همراه و همسفر منده این هم یکی دیگه از داستانهای افثانه های جادوگری امیدوارم که مورد پسند و رضایتتون قرار گرفته باشه و در داستانهای بعدی هم همراه و همسفر بنده باشید. برای شما عزیزان بهترین ها رو آرزو می کنم و شما عزیزانم رو به خدای بزرگ می مراقب خوبی های خودتون باشید. خدا یار و نگهدار شما.